نگر باره زمان بکشاد رامین به گفت ای روند سرو سیمین مرا این خرمی بست تا به جاوید که نامی گشتم از پیوند خرشید. پس پسانگه ویس و رامین هر دو با هم به بستند از پیوند محکم نخست آزاد رامین خورد سوگند به یزدان کوست گیتی را خداوند پس آن گفیس با خورد سوگند که هرگز نشتند با دوست پیوند. به رامین داد یک دسته بنفشه به یادم دار گفتا این همیشه کجا بینی بنفشه تازه بر بار از این پیمان و این سوگند یادار چگل یک روز بادا جان آن که از ما بشتند پیمان از این پس چوز اینسان هردوان سوگند خوردند به مهر و دوستی پیمان بکردند گواه کردند یزدان جهان را همیدون اختران آسمان را و آن پس هردوان با هم برفتند گذشته حالها با هم بگفتند آن پس همچنان دو مه بماندند به چه خوشی و کام دل نراست موبد از کشور ماه با پیامی از رامین درخواست تا برای نخجیر نزد او رود و ویس را نیز همراه برد تا مادرش شهرو از دیدار فرزند شادمان گردد چ این نام بخواانی زود به بهاران را به کام خیش دریاب همیدون ویس را با خود بیاور که میخواهد ما دیدار مادر. مراه افتاد رامین با دلارام به روی دوست راهش خوش بود و رام چامت شاد کام در کشور ماه پذیره رفت شاه و لشکر شاه هم از ره شد تا پیش مادر شده شرمنده از روی برادر به دیدار کایک شادمان شد پس پسان شادیش یکسر سر اندهان شد کجا از روی رامین شد گسسته، بر او دیدار رامین گشت بسته، نهفته روی او گهگاه دیدی، به نزد شاه یا در راه دیدی. شبید به بستر ویست از دیک شد و به گمان آنکه شاه موبت خفته است، او را گفت که برخیزد و رامین را که قصد عزیمت به مغان دارد از بام قصد ببیند. از اتفاق شاه موبت بیدار بود، سخن دایه بشنید و به راز او پی برد. چون رامین بود با خسرو یکی ماه به نخجیر و به رامش گاه و بیگاه. شنچه خفته بود و ویس در بر، دلان در داغان خورشید دل بر. که در برداش چونان دل فروزی، ز پیوندش نشد دلشاد روزی. بی آمد دای پنهان ویس را گفت به این روز ویسا چون توان خوفت کرامین رفت خواهد سوگرمن به نخجیر شکار و جنگ دشمن همکنون بانگ کوس و نای روین ز درگاهش رسد بر ماه و پروین اگر خواهی که رویش باز بینی و سینی کوتر از دیبای چینی یکی بربام شو بنگر زبامد که چون ناگه بخواهد رفت کامد قضارا شاه موبت بود بیدار شنید از دایان وارون گفتار به جست از خوابگاه و تند بنشست چو پیل خشنا کاشفته و مست زبان بخشاد بر دشنام دایه همی گفت ای پلید خار مایه گیتی گیتی نیز تو ناپار ساتر ز سگ رسواتر و زوبی بهاتر هران کو زاگ باشد رهنمایش به گور سن بود هموار جایش. پسانگه گفت ویسا خیش کاما زبخر دیو گشته زشت ناما نجانت راخرت ناتید را شرم نرایت را سین کارت آزرم به خردی ننگ و شرم و زینها را به در زدی خود را و مارا زتو آ این برادر نزدیکان و خیشان و نمادر همی تا دایه باشد ره نماید و دیو تباهی همسراید. پس نزد ویرو کس فرستاد بخاند و کرد با او یک به یک یاد دو چشم ویس با آتش بسوزم از اون پس دایه را بردار دوزم ز شهر خیش رامین را برانم دیگر هر به نامش بر نخانم بپردازم ز رسوایی جهان را ز ننگ هر سبزدائم روان را نگه کن تا سمن بر ویس گلرخ رخ به تندی شاه را چون داد پاسخ اگرچه شرم بیانداز بودش قضا شرم از دو دیده بر بودش ز تخت شاه چون شمشاد برجست به کش کرده بلورین بازو و دست مرورا گفت شاه کامکارا چه ترسانی به باد افراه ما را سخن ها هر چی گفتی راست گفتی نکو کردی که آهو نانهفتی کنون خواهی بکش خواهی برانم وگر خواهی برآور دیدگانم که رامینم گزین دو جهان است، تنم را جان و جانم را روان است چراغ چشم و آرام دلم اوست، خداوند است و یار و دلبر و دوست چه باشد به مهرش جان سپارم که من خود جان برای مهر دارم من از رامین وفا و مهربانی نبرم تا نبرد زندگانی مرا رخسار او ما هست و خورشید مرا دیدار او کام است و امید مرا رامین گرامی طرز شهروست مرا رامین گرامی طرز بیروست بگفتم راز پیشت آشکارا تو خواهی خشم کن خواهی مدارا اگر خواهی بکش خواهی بیاویز نکردم نکنم از رام پرهیز چوبش بشنید این سخن ویروز خواهر بر او آن شد از مرگ بدتر بدو گفت ای برادر راست گفتی درخت راستی را بر تو رفتی بر من برفت و بودنی بود از این اندرز و زین گفتار چه سود در خانه کنون بستن چه سود است که دوزدم هرچی در خانه رو بوده است مرا رامین به مهراندر چنان است که نتوانم زبندش جاودان رست چو بشرید این سخن ویروز خواهر دگر برخاک نفشاندی چو گوهر برفت از پیش ایشان دل پرازار سپرده کار ایشان را به دادار شاه موبت که آن حال دید جانش از ملال آزرده گشت، درنگ را روانه دید و به مرو بازگشت. رامین از شهریار دستوری خواست تا به تبرستان رود، شاه موبد او را نفرین ها کرد و آنگاه سر در راه نهاد و راه مرو در پیش گرفت. اما رامین از نیم راه انان برتافت، نزد ویس اندوهگین بازگشت، و آن دو دل داده روزگاری در کنار یکدیگر خوش زیستند اگر چه راه ناپدرام باشد به پدر آمد چه خوشفرجام باشد و زوناکام ویس ماه پیکر به پشمرد چوب برگ از ماه آزر زمین ماه بر وی چا گشته گل رویش به رنگ کا گشته. سراسر زیور برگشاده همه پیرایها یک سو هاده David Tau. یادگار یاد همه کام جهان در دل شکسته دل از کام و لبان از خنده بسته به روزش میر بودی مونس روز چه روی رام تابان و دل شب تاریک بودی قمگسارش ز مشکین موی رامین یادگارش نشسته روز و شب بالای ایوان بمانده چشم در راه خراسان همی گفتی که بودی گر روز از این راه آمدی باد دلفروز. روز ز پشت رخش رسته چون سهی سرف مرو را روی بر من پشت بر مرف. در اندیشه مانده ویس همبار سپرده تن به رنج و دل به تیمار یکی روزی نشسته بر لب بام پگه آنگه که خور بیرون ندگام دو خورشید از خراسان روی بنمود که از گیتی دو گونه زنگ بزدود یکی بزدود زنگ شبز کیهان یکی بربود زنگ ز جانان چنان آمد به پیش ویسبانو بانو که آید دردمندی پیش دارو. بپیچیدند بر هم مورد و شمشاد. زشادی هر دوان را گریه افتاد. زشادی هر دو چون گل برشکفتند. گرفته دست هم در خانه رفتند. به رامین گفت ویس ما پیکر. رسیدت دل به کام و کان به گوخرت. ترا بادین سرای خسروبانی در او بنشین به ناز و شادمانی. به نخجیر آمدستی از خراسان به پیش آمد را نخجیر آسان. هوای دل به پیروزی برانیم که هم پیروز بخت و هم جوانیم. پسانگه هر دو کام دل براندند. به شادی هفت ما با هم بماندند. نگر تا کام دل چون خوش براندند ز شادی زری باقی نماندند پس از آنکه ویس و رامین چندی به شاد کامی در کنار یکدیگر زیستند شاه موبت را از ماجرای آنان آگاهی آمد سخت براشفت و از سودای اشقانان آنان به شهرو شکایت برد و به ویرو نامهای تند نوشت چوا گهگشت گشت شاهنشاه موبت که پیدا کرد رامین گوهر بد همان گه شاه شد تا پیش مادر به دلتنگی گله کرد از برادر مرورا بر گفت نیکو باشد این کار نگه کن تا پسندت هیچ حشیار دلم یک بار برگشت از مدارا از ایرا را کردم این راز آشکارا بدان تا تو بدانی حال رامین نخانی مرمرا بیهوده نفرین سپیدون گه شود از ننگ رویم که رویم را به خون وی بشویم شهرو با گفتار خیش شاه موبد را از کشتن برادرش رامین معن کرد و خوشنودش ساخت و همان روز نامه ویرو در پاسخ شاه موبد رسید که در آغاز شیرین اما در پایان تلخ بود نامه در راه به شاه موبد رسید و او از پیام درشت خیش به ویرو تشیمان گشت کس فرستاد که به میهمانی ویرو می رود و از ویرو میخواهد خواهد که ویس را به دوست پارد چو شاهان پاسخ دلگیر برخاند از آن پاسخ به کار خیش درماند کجا او را گمان آمد که ویرو کند با ویز, ویز نیرو چو در نامه سخنها دید چونان شد از آزار و از تندی پشیمان همانگه نزد ویرو کس فرستاد که ما را کردی از اندیشه آزاد کنون از پشت رخش کین بجستم به خنگ مهربانی برنشستم منم مهمان تو یک ماه در ماه چنان چون دوستاران نکوخا بکن اکنون تو ساز میهمانی در اون ایوان و باقی خسروانی که من یک ماه زی تو میهمانم تو را یک سال از اون پس میزبانم نگر تا در دل آزارم نداری هم اکنون ویسه را پیش مناری چه آمد پاسخ موبد به ویرو درود و حدیه بیمر به شهرو دگر ره بانون را ببردند چه خورشیدی به شاهنچه سپردند یکی شادیو شادی و نخجیر کردند گهی چوگان زدند گه باده خوردند پس از یک ره خانه گرفتند زبوم ما سوی مرب رفتند اگر صاحب دلان باب انایت بگشایند، بقیه داستان و آنچه بر دلدادگان شوریده گذشت در برنامه آینده تقدیم می شود. وشته و تنظیم نادر وزینپور با همکاری هایده و فانی سیمین مجید نجاهی سرخوش حسن ناهید، محمود پور، اسکرپور، حمدانیان، زفیری داداشیان، ازرا، فریدون اسماییدی، سیروس ابراهیمزاده، بهزاد فراهانی و آزر پژوهش. موسیقی از علی تجویدی تهیه کننده منو چهره خلیقی زیر نظر امیر فریدونه God, I call you.